بخش سپوم تداوم و یک پارچگی مفاهیم مطرح شده از جانب اصحاب فلسفه اپیکور در سراسر اعثار از دیوتیموس رواقی گرفته تا ویراستاران فصلنامه زندگی اپیکوری به این امر شهادت می دهد که بدیهی به نظر می مراد اپیکور از لذت چیست؟ این سوال که برای زندگی سرشار از خوشبختی به چه چیزی نیاز دارم اصلا سوال چالش برانگیزی نیست وقتی پولش مهم نباشد و ثروتمند باشیم با وجود این پاسخ دادن به این سوال که برای زندگی سرشار از تندرستی به چه چیزی نیاز دارم ممکن است دشوارتر باشد وقتی برای مثال مبتلا به سردردهای کننده عجیبی هستیم یا پس از شام زغزغی شدیدی در ناحیه شکم خود احساس می‌کنیم ما می‌دانیم که مشکلی وجود دارد ولی یافتن راه حل آن ممکن است دشوار باشد. در هنگام درد، ذهن مستعد آن است که درمان‌های عجیبی را در نظر بگیرد. زالوها، هجامت، گزنه های یا پز، سوراخ کردن جمجمه. درد بسیار شدیدی در شقیقه‌ها و در قاعده سر وجود دارد. انگار کل جمجمه در گیره قرار گرفته و فشار داده می‌شود. احساس می که به زودی سرمان می ترکت. به طور شهودی به نظر می رسد که ضروری ترین کاری که کمی هوا به داخل جمجمه ما راه یابد. فرد مبتلا تقاضا می کند که دوستی سرش را روی میز بگذارد و حفره کوچکی در آن ایجاد کند. چند ساعت بعد فرد مبتلا بر اثر خونریزی مغزی می‌میرد. اگر مشورت با پزشک خوب معمولاً به رغم حال و هوای دلگیر بسیاری از اتاقهای انتظار جراحی معقول شمرده می‌شود به این دلیل است که کسی که عاقلانه و جرف درباره کرده بدن اندیشیده احتمال دارد درباره چگونگی تندرستی آرای بهتری در مقایسه با کسی داشته باشد که صرفاً از حس و شم خود پیروی کرده است علم پزشکی وجود سلسله مراتب میان آشفتگی فکری عامه مردم درباره ناراحتی و بیماری خود و دانش درستتر پزشکانی را که منطقی فکر می کنند بدیهی میدانند ما به این دلیل به پزشکان نیاز داریم که میتوانند در اوقات بحرانی فقدان خودشناسی جسمانی بیماران خود را جبران کنند. در قلب اپیکورگرایی این اندیشه وجود دارد که ما به هر دو سؤال چه چیزی مرا خوشبخت خواهد کرد و چه چیزی مرا درست خواهد ساخت به یک سان به طور شهودی پاسخ بدی می دهیم. جوابی که در سریع ترین حالت ممکن به فکر می رسد به احتمال زیاد نادرست است. ارواح ما مشکلات خود را شفافتر از بدنهای ما بیان نمی کنند و تشخیصهای شهودی ما به ندرت درستتر هستند. سوراخ کردن جمجمه ممکن است به یک سان نمادی از دشواری‌های درک مسائل روانی و فیزیولوژیکی ما باشد. مردی احساس ناخورسندی می کند. صبح با کچخلقی از خواب بر و با اعضای خانوادش ترش رو و بدخلق است. به طور شهودی تقصیر را به گردن شغل خود می و شروع به جستجوی شغل دیگری می کند. به رغم هزینه های چنین کاری. این آخرین ای بود که به نگاهی به داخل یک شهر یونان باستان بیاندازید مراجعه کردم. او به سرعت به این نتیجه می رسد که در شغل ماهیگیری خوشبخت خواهد بود و در بازار یک تور ماهیگیری و یک قرفه گران قیمت می خرد ولی افسردگی او کاهش نمی ما اغلب به قول لکرتیوس شاعر اپیکوری مثل بیماری هستیم که از علت بیماری خود آگاه نیست. علت مراجعه ما به پزشکان این است که آنها بهتر از ما بیماری های جسمانی را میشناسند. بنا به دلیل مشابهی وقتی روحمان ناخوش است، باید به فیلسوفان روی آوریم و آنها را مطابق معیار مشابهی ارزیابی کنیم. درست همان گونه که پزشکی هیچ سودی ندارد اگر بیماری جسمی را برطرف نکند، فلسفه نیز اگر تعلم فکری را برطرف نسازد بی است. به نظر اپیکور، وظیفه فلسفه عبارت است از کمک به ما در تعبیر و تفسیر سائقه های تعلم و خواستهها و امیال نامشخص و مبهم خودمان و بنابراین رهانیدن ما از ترهای نادرست برای خوشبختی بیش از یکصد سال قبل سقرات از ما خواسته بود به محض ظهور اولین سائقه از عمل بازیستیم و در عوض اقلانیت خواسته های خود را مطابق روش پرسجوی شبیه روش سقراتی بررسی کنیم. ممکن است چیزی که فلسفه ارائه می گاهی شبیه تشخیص های زده شهودی بیماری های ما باشد. و بنابرای وعده اپیکور ما را به درمان های بهتر و خوشبختی حقیقی رهنمون کردن.